بسم الله و حسنان و حسن سلام الحمد لله الواحد الاخد الفرد الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکلکو شریکن فی الملک و لم یکلکو ولی سل و کبر و تکبیره و سلات و سلام علی خیر خلقهی و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین عبالقاسم غاسم المصطفى محمد صلی <تصفيق> اللہ و آلیه و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسكري المهدی ارواح و مهدتار مقدم حمد محمد رجب و الله على اعدائه مجمعین من الان الا قیام یوم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 خب عرائز ما در این شب‌های نورانی ماه مبارک رمضان یه <تصفح> <تصفح> شرح خیلی کوتاهی بر مباعز و فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام نامه 31م نهج البلاغه که قبل عرض کردم که این نامه خلاصه مملو از مطالب حکمت آمیزه دیشب اواخر عرایزن به این جمله رسیدیم که چون دیگه اون خاتمه سخنرانی ما قرار گرفت نشد یه خورده راجع صحبت کنم که حضرت امیر عليه السلام به فرزندشون میفرمایند قارن اهل الخیر تکون منهم که با آدمای خوب همنشین نشینشو جزو اونا به حساب می‌آید. با اونا محشور میشه و باین اهل شر تبین انهم از آدمای بعد، بد از آدمای شرور آدمای های کنهکار فاسد دور شد جدا از اونا میشه با اونا محشور نمیشه این خیلی تلام ارزشمندیه که دیشب فقط به همین رسیدیم که من گفتم که جناب سعدی تو دو بیت شعر دو تا آیه قرآن رو تفسیر کرده در اهمیت همنشینی مجالست او گفته که سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و آدم شد یه سگ دنبال اصحاب کهف اومد خدا رو شد چند بار تو قرآن میاره که دیشب گفتن وقتی حداد اینا رو میپرسند خدا همش این سگر رو تکرار میکنه میگه این این با ایناست یقولون سلاستان رابعهم هم به هم میشه ما میگه من سگر رو که نمیخوام میگه نه ازن این با اوناست اینا سه تا بودن چارمی اون سگه بوده و یقولون خمستون سادس و هم کلبه هم باز دوباره میکنی که بعضیا میگن میگن تا بودن شیشمی سگه بوده و یقولون سبعتون و سامن و هم کلبه هم بعضی ها میگن تا بودن هشتمی سگه بوده سگ از خواب کف روزی چند پی مردم گرفت و آدم شد. یه بیت تو بیت بعد یه آیه دیگر اومد. پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. یه پیغمبرزاده رفت با آدم های شرور هم نشین شد خدا میگه اصلا پسر نوح هم نیست. یه برادری هست، خدا میگه انهو لیس من اهلک میگه نه اون فرزندتونی چون خدا به حضرت نو قول داد کشتی رو بساز ما تو رو و اهل تو رو نجات میدیم. وقتی بچهش غرق شد تقریبا اعتراض کرد گفت به من وعده داده بودیم. که اهل من نجات پیدا کنم پسرم غرق شد خدا میگه نه انه اهل تو اونایین یعنی که به تو ایمان آوردند انه لیسا من اهلک اون پسر تو نی اون عملون غیر و صالح چون اون عملش صالح نی غیر صالحه اون فرزندت تو نی. یه برادری حضرت رضا داشت به خاطر یه ای بهش میگفتن زیدون نار من اون قصه رو نمیخوام بگم ولی زید بود اسمش ملقب شده بود به زیدون نار این برادر حضرت و فرزند موسف نجفره این همه جا میشه است میگفتش که خدا زرریه حضرت زهرار رو روز قیامت به آتش جهنم نمی سزنه. می گفت خدا بدن اولاد فاطمه رو به آتش جهنم حرام کرده این توجه بفهم دید خب یه تم عواما شما از یه حرفا بزنیم میان عواتو ماچ میکنه میکن. میگن خوشا به حالت هوای ما هم داشته باش باز گریه هم می‌کنن مثلا دست تو ماچ میکنن. میگن خوشا به سعادت فرزند فاطمه ای سیدی قیامت بعد هوای مارم داشته باشیم. یه جام داشت از این صحبت‌ها میگرد یه دم دورش جمع بودن توجه نداشت که حضرت رضا پشت ستون نشسته حضرت گوش میداد این هم همینا رو میگفت که زرگیه فاطمه زهراب بدنشون به آتش جهنم حرامه مردمم هم میگودن خوش آب سعادت شما اهل بید پیخنبر خی... امام رضا بشفر مودن که زید خوبوش بدین گفت اگه تو تقوا داشته باشی فرزند مصب نجا اما اگه تو تقوی نداشته باشی آدم بی تقویی باشی اصلا تو پسر موسط جعفر نیستی. خیلی حرف تندیه. می گفت اول برادری تو ثابت کن بعد ارز طلب کن. اول ثابت کن تو پسر فاطمه بعد بگو پسر فاطمه بدنش به آتش جهنم رو. اول بعد تو پسر فاطمه باشی. بعد بگی پسر فاطمه بدنش با آتش. گو باگه تقوا داشته باشی پسر فاطمه زهرای اگه تقوا نداشته باشین پسر او اصلا نیستی که بخواد بدنت به آتش جهنم حرام بشه بده. خب این حرف تنده زید گفتش که ابن رسول الله یعنی حالا من تقوا ندارم بابام موسی بن جعفر نیست بابای من کیه من من تقوا ندارم آدم بی تغوا. پدر من موسی جعفر نیست حضرت هموندن قرآن خوندی گفت بله گفت پسر نوه پدرش نوه نبود پس کی بود پسر نوه پدرش کی بود اگه نوه نبود اما خدا میگه انهو لیس من اهلک. میگه نه اون پسر تو نی چون تقوا داره تو هم اگه تقوانه داشته باشی حکمت همینه قیامت میگن تو پسر موسب نجافر نیستی انهو ليس من احلک انهو عملون غیر و صالح بله آقا اونو که بهاییتو به وجود آورد سید محمد علی باب بود این سید, مح... این سید بود اما میلیون ها نفر رو در جهان بهایی کرده حالا این ادالته که بگیم بحایی ها میرن جهنم ولی آسدلی محمد باب میره بهش چون مادرش فاطمه است. از این چه هستند این چه؟ اصلا پارتی بازی از این بالاتر چی میتوند باشه؟ بیگم آقا اون که اینا رو میگن اون پسر فاطمه است. اون آزاد هر کاری بکنه. اینا نباید حقیقش رو گوش میدهد. پیروانش میدن جهنم اما خودش نه قیامت میگن این پسر فاطمه نیست چون عملش صالح نیست. مثل پسر نو. سر نوح با بدان بنشست، به خاطر ما چقدر سید داشتیم در طول تاریخ فاسد بودن اصلا فرقه های زالد روز کردن حالا یکی شما اسمش آوردیم که اینا مردم رو به بیراهه یکی از جوونا اسمای روز قیامت یوم الحسره یکی اون روز اون رو خیلی آدم حسرت میخوره اما شما هم که امشب اومدیم اینجا هیئت و عشق میریزین اونجا حسرت میخوریم میگیم بیشتر از این میتونستیم استفاده کنیم قدر ما از رو ما ندونستیم ما نفهمیدیم واقعا ما هم الان حسرت میخوریم میگیم حیف این ما رو ما قدرش رو ندونستیم این ما عجیبه یا آیون کسی یه آی قرآن بخونه سواب ختم قرآن داره چقدر ما میتونستم ختم قرآن کنه یا آیه از اون کسی بهم بگی بسم الله الرحمن الرحیم ختم قرآن های کسی سوره توحید خونه چهار پنج در قرآن چار پنج, پنج آیه از این بخوابی تو این ما عبادته حالا کسی بخواب عبادته نماز شب خونه چیه <تصفيق> نفس بکشی عبادته خب کسی که نفس میکشه عبادته نماز شب بخونه تو قنوت عشق بریزه چیه؟ این نفسش آقا اونه ببین دیگه راز و نیازه با خداش چیه؟ الان من همیشه تو سخرانی میگم اگه مدیرامل ایران خود بیاد اینجا بگه کی یه ختم قرآن کنه من یه پرشیابش میدم. میگه تو این موبایلاتون ضبط کنین بیارین من میدم با کامپیوتر بررسی کنن اگه همه رو خونده باشین شما چند تا قطم قرآن میکنی؟ پنجاتا میکنی دیگه من فکر نمیکنم کسی اونجا اینجا پنجاتا گمتر قطع کنی میگی هر کدومش یه پرشی یا پنجاتا پرشی دیگه دیگه شب و رو سر از خانه میشناسی نه شب میفهمی نه. شون هنو رو قرآن میکنه خانومت میگه بابا سلامتیت در خطره میگه فدای سرت میگه سلامتی چیه بحبه حسابی پرشی میدن میگه سلامتی چیه میگه پرشی بدن اصلا من شب و روز میخونم خدا شایده جب اونا اون چیزایی که خدا روز قیامت پای ختم قرآن میده پرشی ها بیشش نخوچی کش بیش میشه به خدا اگه اونجا به یکی پرشیاب بدن گریه میکنه میگه به من نخوشی کشمیش دادن میگه من اصلا هیچی برم ندادن اصلا رد هم کردم بله خب ما قدر نمیدانیم چقدر اونجا حسرت میخواییم خیال نکنیم حسرت رو فقط گناهکار ها میخورن نماز شب خونام میخونن من تو یک کتابی میخوندم یکی از پادشاهانی که خدا به خوبی از او یاد کرده زل اینه در قرآن دیگه. اونو پادشاه عادلی دانسته در سوره کف که عن ذلقرنین میگه از تو راجب این پادشاه عادل میپرسن اینجوری جوابشون بده که بعضی از خدماتشون رو میگه تو همین سوره کف حالا این کی بوده بین مفصلین اختلافه که این ذلقرنین کی بوده که خدا این پادشاه رو عادل دانسته اما تو حالاتو او تو توی کتابی شاید تو همین سیاحت قرب باشد شاید ملحبی. آقا نجفی قوچانی که این داشت با سپاهش میرفت شبم بود تاریکم بود چراغم روشن نمیکرد فانوسی چیزی چون میخواست دشمن رو قافلگیر کنه دیگه یه اصل مهم در جنگ قافلگیری استفاده از تاریکی شبه تو جپ هم میخواستن عملیات کنن که یا عملیات میکردن اواخر ماه بعض وقت‌ها اوایل ماه چرا چون مهتاب نبود من که تو بی باشه از این روزه اگه مثلا شب 14 شما بخواید عملیات کنید اصلا با روز هیچ فرقی نمی‌کنه یعنی یه دونه اگه گنجش به جنب میبیند چون اما اواخر ماه ماه دیگه, دیگه دیده نمیشه میره اوایل ما هم نیست تاریک تاریک اصلا گای محتاب که نباشه ستاره ها نباشن دست تو میاری بیرون دست خودتو نمیبینی این اصل قافلگیری خیلی مهمه تو جنگ اینم تو تاریکی میرفت چراغم روشن نمیکرد ولی اصحابش یارانش میفهمیدن از صدای پایه عصباشون که اینا روشن دارن را میرن از صدای پای عصب معلوم میشه دیگه مثلا رو سنگ را بری یه صدا میده رو خاک را بری رو گل را بری تو آب بری اینا صداهاش فرق میکنه تو شن که بری معلومه که عصب دارد روشن را میره اینجا شنزاره اینم تو اون تاریکی داب زد که عباد الله بندگان خدا از اسبابتون پیاده شین از این شنا بردارین هرچی میتونین بردارین گوه اگه بردارین صبح که آفتاب بزنه پشیمون میشین اگر هم بر ندارین صبح که آفتاب بزنه پشیمون میشین ولی من توصیه میکنم بردارین تنبری نکنیم خب یاد کنجکاوند گفتم حالا می پایین یه یه مشت یه چهار پنج تا ور می داریم. صبح که آفتاب زد نگاه کنیم اینا چیه که آخه بر داریم و بر نداریم حفرت میاره. آره رو یه پنج تا زنی لیختن تو کیسه و اومدم بالا یه تنبلن تمبلن می گفتن خب احمد که برداشته صبح که نگاه کرد ما هم نگاه میکنیم دلش کم. گفت که حسین رو مون برداشته داداش هم برداشته همین نگاه کرد من یه چشم می دهدن این چیه؟ اون دیگه که پیاده نشد صبح که آفتاب زد دیدم همه جواهره همه جواهر اصلا جواهرهای قیمتی اونایی که برداشته بودن که زار می, می گفتن می گفتن ما توی معدن جواهر رفتی چهار تا بود می تو سرش گلیه می کرد می نادونی رو ببین تا کجا اونی که ور نداشته بود که اصلا چاقو میزدی خونش در نمیمد اصلا میگو من یه دونه هم بر نداشتم آقا من میگو به کی بگم خب من بکی بگم یه دونه هم من بر نداشتم به خدا آقا این همین دنیایه که ما توش هستیم من بعد رو منبر بگم که قرآن بخونین <تصحنت> اونایی که میخونن پشیمون میشن اونایی که نمیخونن هم پشیمون میشن ولی باز بخونیم باز بخونیم بهتره. الان ما ها که قرآن میخونیم پشیمون میشیم میگیم چرا بیشتر نخوندیم اینجا چی میدم پای قرآن ما چقدر چقدر وقتا به طالت گذشت اونایی که نخوندن که دیگه اصلا دیوونه میشن میگن آقا ما تو معدن رفتیم یه بار رو به خدا این نستدیم این یوم الحسره بگیرید خیلی روزه سختیه اون روزه هایون. برای مومن سخته. برای مومن سخته. برای روزه سخته. اما بالاترین حسرت رو خدا میفرماید فرماید. ولی بله خب حسرت بالاترین حسرت رو خدا می اونایی می که هم نشینای خوبی نداشتن. رفیق خیلی ما. هر هرچی شدیم مال رفقاتونه. خدا اگه آدم مؤمنی هستیم مال رفقات اگرم خدایی نکرده خدایی نکرده یه جوانی بیراه میره بازم مال رفقاش همش مال هم نشینه آدمی آقا به خاطر یه جمله از رسول خدا دیدم فرمودن المرعو علا دین خلیله میخوان یکی رو بشناسین رفیقاشو ببینیم این بهترین تحقیقاته ما اداره که بودیم یه پسری بود هم پسر شهید بود هم برادر شهید بود بابا شهید شد برادرش هم شهیده اومدم تحقیقات تو اداره برای ازدواجش بعضی منو نشون رو نشونده بودم از این بپرسیم اومدم بم... گفتم آقا ایشون برادر شهیده پسر شهیدم هست اما با اینا تو اداره رفیقه هر چی آقا آدم مسلدار بود این با اون گرم میگیره اصلا خودمونی میشود. آدرس میداد. میدونم رفت آمد خانوادگی به این داره میگره. هرچی آدم مومن بود این از اون بدش فاصله میگره. از اون پسر شهید هست. برادر شهید هم من. اما با اینا رفیقه. من هیچ چیه هم خوبه نقدم بده. اینا رو میبینیم با اینا اصلا سایه رو با تیر میزن اینا خوشش نمیاد ولی با اینا رفیق گفت دست رو شما درد نکنه خیلی من رفت من نگوتم از این بدی بودم رفیقاش اینا رفیق مهمه الان یکی میاد در خونه ایم من میرم دم در میگه که مثلا حسین اتون هست پسر ما رو میپرسه آقا حسین تون هست میگم حسین هست دانشگاه میگه خیلی ممنون پسرم که میاد دعواش میکنم میگم اینا چی هم تو باشه پسرم تریاکیت میکنن اما با اینا را نکن رفاقت خیلی مهم, مهم چطور مهم نید آدم رفیقش اینا باشن اما یکی دیگه میاد میپرسه حسین هست میگم نه رفت دانشگاه پسرم که میاد میگم باریکلا چه بچه هایی باشون رفیق قدر اینا رو بدون چطور آقا رفاقت مهم نی؟ المرعو على دین خلیله آدمی تو دین همون رفیقاشه. اگه می ببینید ببینی با رفیقه اینجا همین آقا میفهمد اگه با اهل خیر هم نشین بشی جز و اونا به حساب میای. همه جا میگن این بسیجیه میگن این حیعتیه میگن این امام زمانیه این جمکرانیه شما اگه با هیتی رفیق باشید پیاده کربلا بریم میگن امام حسینیه بالاترین حسرت و روز قیامت کیا میخورن اونایی که میگن ما هم نشینامونو خوب انتخاب نکردیم ما خوب رفیق نگرفتیم آیه قرآن یوم یعز و ظالم و علا یده دوزی که میگه گنهکارا چی آقا پشت دستشون رو گاز میگیرند این شدت حسرته آدم گای آقا از حسرت داره به خودش میپیچه مثل ماری که اولو گذیده باشن به خودش میپیچه پشت دستش رو گاز میگیره چی میگه یقول یا لیتنی اتخست تو مر رسوله سبیلا میگه کاش من با پیغمبر اکرم هم نشینم. کاش من با اهل بیت پیغمبر هم نشده کاش من با امام حسین هم نشده کاش من با امام زمان با امام زمانی ها رفت آمد داشته یا ویلتا حالا میگه من با رسول الله هم نشده هم با اهل بیت نه میگه حالا بدتر از این یا ویلتا وای بر من لیتنی لمعت تخف فلانن خلیلا کاش من با این عوضی ها رفیق نمی شد میگن اونها رو نشد هم این چی فدای سره میگه ببین من با کیا رفیق شدم میکنه. کاش فلانی رو اقلی رفیق نمی گرفتم بعد پشتت چی میگن لقد ازلنی انزک میگن اینا ما رو از قرآن دور کردن ذکر یه معناش قرآنه اینا ما رو از اهل بیت دور کردن ذکر یه اهل بیت. اینا ما رو از خدا دور کردن اینا ما, رو فاس... ما نماز خون بودیم بی نماز شدیم خدا من اگه قدرت داشته ولی زورم نمی میگفتم این رفقا جمع شن پول بذارن زمان شا می کردن زمان شا این مشروف فروشی ها رو می‌گرفتن، گرفتن سینما ها رو می حسینیه می کردن. تو همین محلی که ما زندگی می دو تا سینما رو حسینیه کردن اله هست یکیش حسینیه خامنی ها یکی حسینیه نمیدونم یه گروه دیگه توجه بفهمه اونا هم کرد. الان یادم نمیاد شانجانی ها ها یکی حسینیه شانجانی ها یکی حسینیه اینا سینما رو مشروب فروشی رو میگرفتن کتاب خونه میکردن کتاب های دینی میفروختن که کاری خوب... خوبیه الان هم آقا خیلی آدم قدرت داشته باشه پول بذاره این خونه ها رو بگیره. حسینیه کنه، مسجد کنه اینا آقا مردم رو منحرف میکنن من یه جوانی اومد نصیتش میکردم گفتم که آقا نرو نکن گفت ایبش چیه؟ گفت کی حروم کرد؟ اصلا آقا دیدیم اچه بادمه جسوریه میگفت کی حروم کرده؟ کدوم مرجع گفته اون حرومه گفتم من میگم گفتش که چرا؟ گفتم تو که میری اونجا قیلیون میکشی مادرت شب تا صبح مثل بید میلرزه چه گناهی از این بالاتر همین که مادرت ناراضیه بابات ناراضی همین که آقا آزم باباشو آقا والدین بشه چه گناهیه بابات میگه نرو مادرت میگه نرو بعد میگه تو میری من شب خواب ندارم خب چه گناهی از این بالاتر مگه مرجع باید بگه به این توجه ببنید بعدم میدونید مثلا ایلیون اینجور شما اول که میکشی خب جوون این دیگه چمزن اصلا نکشیده دیگه چپ تا صبح تو هپروته میگه چپ چیزی بود ترجم <تصفح> چون اولشه دیگه یه مدت میگهشی بدن مقاوم میشه دیگه اصلا هیچ اثری میاد میگه آقا دیگه میگه یه خورده بعد دوزشو ببرم بالا <تصفح> میگه دوزن نگه میگه من بیا من میسازمت به سن ما برسه دیگه موادی دیگه آقا به خدا به سن ما برسه قابل. اولش اینجوریه بعد مثل این داروهاست دیگه هی دوزش میره بالا هی دوزش میره بالا آدم یه دفعه به خودش میاد مینه از راه به در شده دیگه اینا رفیق بدن مثلا بعضیا مثلا یه قانونی میاد دم در میگه بچه من صبا اینا که عین چیزایی که من شنیدم میگه میگه بچه من صبا اون ما رو برای نماز صبح بیدار میکرد الان پا نمیشه من اولین سوالی که می کنم چیه؟ میگم رفیقاش عوض نشدن همین تا میگم میگه زدی تو خال این مثلا مسجدی بود بعد رفت دانشگاه اصلا رفیقاش عوض شدن رفیقا عوض شدم دینش عوض شدن با امام حسینی ها رفیق باشی امام حسینی با حیعتی ها رفیق باشی حیعتی با امام زمانی رفیق باشی امام زمانی این اون رو میگن که ما رفیقامون عوض شدن راهمون هم عوض شد لقد ازلني عن الذكر اینو ما رو از راه به در کردن اینا قرآنه اینا قرآنه بعد اینو برا زنده ها میگه یا برای مرده ها میگه آقا برای شما میگه میگه آقا شما بیاین اونجا اینو میگین ببین میگه بیاین اونجا اینو میگین میگین که من ندیدم آقا این همه نامه برای امام حسین دادن این همه نامه از کوفه بعضی میگن دوازده تا بعضی میگن 18000 تا بعضی میگن 25000 تا بعضی میگن 30000 تا شاید علت اختلاف بشم اینه که مثلا بعض نامه نامه‌ها رو شمردن شده دوازده تا بعضی امضاها رو شمردن بیشتر شده چون چون یه نامه بره هشت تا امضا پاش بشه اینجوری هم بود نامه می رفت سی تا امضا پاش بود یعنی سی نفر این نامه رو با هم نوشته بودن یه نامه بود اما سی تا دعوت کنند بباشد. حالا ما نمی اما من ندیدم به هیچ کدوم اینا اماموسین جواب بده هم یه جواب کلی داد که چون جواب نامه واجب مسلم ابن عقیل آمد تو مسجد کوفه خون از روح خون مسلم ابن عقیل نامه اماموسین آورد از روح خوند. اما اینکه جداگونه به کسی جواب بده ندیدم جز حبیب ابن مظاهر. اینا خیلی دوست داشته ما. اینا جایگاهاشون فرق میکنند. برا حبیب نوشت که منل قریب از یه آدم غریب به دوست سمیمیش حبیب. الال حبیب. بعد گفت اگه میخوای گفت من الان اینجا محاصره شدم گرفتارم. اگه میخوای بچه های فاطمه رو بچه های پیغمبر رو یاری کنی وقتشه بعد هم فرمودن از خونت خیلی جمله قشنگی ها. از خونت در راه ما دریغ نکن انشالله جدم هم عوضش روز قیامت بکنی <تصفيق> خیلی جملات قشنگی ها پوتا چند خط بیشترین این خیلی جمله قشنگیه جوان اگه امام زمانم اومد این یادگاری از خونتون در راه اهلوی دریغ نکنین پیغمبر تلافی میکنند جبران میکنند گفت از خونت در راه ما مزایقه نکن جردم زامنه یه همچنین نوشت. نامه نوشته اما میخوام رفیق رو بگم نامه برای حبیب آمده این اومد دنبال رفیق جونجونیش رفیق اینه که شما رو بیاد ببره کربلا رفیق این آقا شباب بیاد با موتور در و بیاره به حسینی بگه بیا بریم بیا بریم حیفه یه دونه سلام هم به امام حسین کنیم قنیمت خود رفیق خوبیه میگه حیفه تو خونه بشینی چی اونجا یه سلام میگه صلی علیک علیکم میگیم حیفه چند شب مگه دیگه مونده تموم شد دیگه به خدا انقدر تو ماه بعد بگردی از این مجلس ها پیدا میشه مگه مارمزون پیدا میشه مجلسم پیدا شد این حال نیست من میری مجلس مگه این حالا هست اینا مال ماه مبارکه این نمول مهمانیه شما خیام کنیم این دل نرمی که شما دارین من یه کلمه میگم اش میدید این ماه دیگه هم هست. امام زین العابدین میگه سلام به ماهی که از سلام و که یا مجاورن قلت فی زنوب و رقت فی القلوب تو خدافزی میگه خدا همسایه ای که دلا تو تو نرم شد چقدر دلای ما تو این ما نرم بود یعنی زود گریه میکردی گناهامون هم کم شد هیچ ماهی ما انقدر کم گناه نمی کرده. این ما آقا گناه ها رو کم میکنه عبادت رو زیاد میکنه عشقه رو زیاد میکنه ماه خوبیه پردش رو بدونه رفیق رفیقو به شب شما رو از پای تلویزیون بلند کنه بیاره رفیق هم میتونه این وقت مادرش و ما ما خودمون پدر مادریم دیگه میگه آقا بر دو تا نون بگیر هر کاری میکنه میگه درس دارم نمیره آقا میگه من درس دارم نمیرم آقا دو تا نون میگه نه اما رفیقش میاد میگه یه چیزی بگم نه نمیگی میگه من نوکره ام میگه من تا حالا مگه نه میگه یه تو کفات تو میدان میای بری من میگه من نوکرتم هستم انقلاب میره حالا انقلاب نزدیکه آرا بگید تو نوک بابیا تو دربند بریم این تو دربند میره دو تا نون نمیره بگید این تفثیر رفیقه رفیق میتونه آید رفیق میتونه شما رو بیاره پای دستگاه ابا حالا این رفت دنبال رفیقش اما رفیق 86 ساله خودش 82 سالش بود اون 86 سال من توی یه دیدم بیش از 50 سال با هم رفیق بودن این این چقدر ارزش داره اینا رو بعد قدرش رو میدونید اینا کیمیاند اومد در زد زن مسلم مسلم بن اوسجه اومد دم در گفت مسلم نیست کارش دارم گفت رفته حنا بخره گفت پیداش میکنم تاجا <تصفيق> گفت من پاتوقشو میدونم اومدید دره حنا ها رو قیمت میکنه میگه این چنم دستشو گرفت کشید گفت بیا بیا کارت نذاش حنا بخره گفت چرا چرا من کشیدی بیرون؟ گفت میبرم می دیگه حنایی سرت نمیذارم <تصفيق> که رنگش ابدی باشه من چلو فاطمه تو رو سرف رازم من به خون سرت موتو خذاخ میکنم گفت چی شده؟ نامه رو نشون گفت <تصفيق> ما هم حسین از ما کمک خواسته هست یا نیست گفت جونم فدای حسین اینا چون چهر معاصره بود اصلا بیرون اومدن از کوفه خودش یه پروسه بود این ابن زیان آقا خیلی کاردان بود کل شهر ما تمام دروازه های خروجی رو معمول گذاشته بود. اینا گفتن که به قلامشون گفتن دوتا اسب رو ببر بیرون کوفه تو اون نخلستون تیمار کن و آب بده و اینا اما همون جا بمون دیگه بر نگرد. گفتن ما با اسب اگه بخوایم بیایم سر سرصدا میشه اما خودمون کبشا رو در میاریم پا به یه جوری میاریم دیگه. نه می‌خواستم از اون تاریکی شب بی سر صدا اما گفتن اسبا رو اونجا من توی یه مکتلای قدیمی ها الان دیگه از این مکتلا نیست اون جوونیام می‌خوندن دیدم قلامه دید دیر کرده نه هی میمدن اینجا بستر میمدن از اون وارد می‌می‌شدن بستر دو تا پیرمردا دیر اومدن خیلی شب از نیمه گذشت دیدن این غلامه زبون گرفته تو گوش این اسبا میگه اگه اربابام نیان خودم میرم کربلا سر کارستم خوش. می میگفت و عشق می ریخیه خال خوش اینا رسیدن خدا رحمت کنه شهید قلامنی رو می گفت هر روز برای سپاه روبرور یار می اومد خیلی ناسخت ها مثلا یه روز این زن و بچه میدیدن سه هزار تا اومدن به اینا اضافه شد یه رو می امروز امرو هش هزار تا اومده یه روز می دیم هزار تا اومده اما برای این سپاه هیچی آخر سکینه اومد جلو گفت بابا هیچگی ما رو یاری کنیم هیچگی این مر نمیان امام فرمودن که دخترم امروزم بر ما از کوفه لشکر میاد. این بچه ها رو سکینه جمع کرد گفت لشکریان بابام که میاد خوش آمد بشون یاد دیدم تا پیر مرد. دو تا پیر مرد در دور میان یکی حبیب یکی مسلم چه ولولهی شد وقتی اینا وارد شدن یه جمله میخوام معرفت حبیبو براتون بگم وقتی وارد شدن یه قلامی آمد گفت علیا مخ... حبیب، علیا مخدره زینب به تو سلام بزن آقا اینو که گفت اونجوری با دستش زد تو صورتش؟ منقلب شد گریه کرد مسلم گفت چرا گریه می گفت معلوم میشه این خانواده خیلی بیکس شده فو چطور؟ فو من که هم دختر علی بخواد به ما سلام برسیم ما به حساب نمید ما دختر امیر المومنین کجا این ای رفیقه ببینید قارن اهل الخیل حکومن هم با اینا بشین جز به اینایی از عمر سعد و از آدمای شرور شروع فا... حساب جدا کرد. چی جدا کرد؟ قسم دوبومش هم بگم اینا، این این قسم چی جدا کرد؟ هر ابن یزید ریاهی از اونا جدا هر جدا شد حالا هر چه قصه پیچیده ای دارد نمیدونم شب شب سیزده همه شب توبه است کم کم داره نیمه ماه رمضان میاد اصلا روزه بخونم یه، یه، ببرم در خونه هر هرخی فوقلاده هست راوی گفت روز آشورا دیدم مثل بید می لرزه بگو حسین جان هر وقت یاد گناهام ها می افتم به جزا و خضا هر وقت گذشتم یاد میکنم سالی که گذشت یاد می میگم دیگه امیدی به من نیست اصلا ناامید میشه اما هر وقت یاد کرم تو میفتم یاد لطفتون نه منم تمام میکنم میگم نه برم برم این آقا خیلی کریمه چقدر آدم اومدن دستشون رو گرفته مثل بید میده رفیقش اومد سلشگر بود دیگه بود. سلشگر خیلی درجه گفت از من سال میکردن شجاع ترین مرد کوفکی من نظرم تو بودی انقیم شجا بوده. اما امروز شک کردم نظرم برگشت جنگ با سی چهل نفر تو رو به این دوز انداخته. ها چندان مگه اینا نصف روز دیگه. گفت نه با من که اصلا گفت عمرم تو جنگ گذشته فلانیم ما که ازم مرد جنگی و اگه می, می لرزم نه از ترس جنگ می لرزم. من خودم رو بین بهشت و جهنم می بیدم خب نمی جهنم رو انتخاب کنم بهشت رو انتخاب کنم گف خب اون شبی که من کوفه خوابیدم صبح میخواستم بیام راه رو بر حسین ببندم پیغمبر اکرم رو خواب دیدم به من فرمودن هور چیزی نمیگذره تو بهشت مهمان من, من هست من منتظر هستم. وقتی هم می اومدم بیرون دیدم حاطفی به من میگه که این مرد داره به سرعت به سمت بهشت میره اما باورم نمیشه به رفیقش میگو حسینو بکشم پیغمبرم منو شفاعت کنه من اهل بهشت باشه تو رام که می اومد خیلی شروع میگم خیلی راه و میبست امام می اومد از هر طرف بره می اومد راه میبست هزار نفرم بودن این اسبام دیدی هی بلند میکردن دستان رو میکویدن زمین امام دیدی خیلی شیطنت میکنه یه نگاهی به این زن و بچه کسید مثل بیت میدرسه امام حسین ناموسش هم بود امام حسین خیلی کارش سخت بود جنگ یه طرف ناموسش یه طرف پچه های خوشیت یه طرف اینجا بهش فرمودم که او و علینا گفت تو با مایی یا بر علیه مایی آقا موزه تو. تو کدوم یکی هستی با منی ای؟ اینم گفت علیکم یا حسین من گفت می‌بینی که من مقابل شما آقا تا گفت علیکم امام سه بار فرمودن که لا حول ولا قوه الا بالله گفتم آقا این چیه یکی گفت این چه ذکیه شما گفتین گفت من از حرف این مرد تعجب می‌کنم اسمش در تومار شهدای کربلا سبته یاره <تصفيق> خودمونه اسمش هست این میگه من بر علیه تو هم. <تصفيق> بعد برای اینکه بهش نشون بده که تو بر علیه ما نیستی این توهمه چون زن و بچهش مثل بیدن داد زرد سرش سکلر که اون مک چرا اینجوری میکنی مادرت به ازاد بنشیند تا گوه آقا سرش رو انداخت بایید نه تو مادرت خاطمه نه. تو نام مادرم بردی ولی من فاش میگویم که من کمتر قلام مادرت هستم خب نه من جواب نمیدم. میخورم بعد جواب بخوری آقا خوردن بردنه بعد جواب بخوری بردی بعد جواب بخوری بعد جوابت حرف قورت بدی اما گفت چون از تو خاطرم جمعه امرو من خودم رو به کمتر از بهشت من تصمیم گرفتم به هرکی هم میرسید میگفت من دارم میبرم عصبم تیمار کنم من دارم میبرم عصبم آب بدم که از پشت ندارنش گفت ندارن دیدم اون سمت میره نکشنش یه خورده که دور شدید شد دیگه نگاه کردید تیر دشمن بهش نمیرسه گفت نه تو بد کردی. این شما هم اگه میتونین آقا از اصف پیادشی پیادشی خوب <تصف> از اصف اومد پایین به خدا بیای پایین خوبه اگه میتونی کپشاتم هم این بوتیناش در پر گل کرد این بندار و بس به هم انداخت رو گردنش پا به رهنه بوتین به گردن پر گل و از سر اینجوری انداخته پایین میومد طرف توکل بر, بر خدا میرم امام از خیمه اومد بیرون اولین جمله که گفت ارفع را یا هور هر سر تو بلند گفت روبه خدا میری چرا سر ای؟ کسی که روبه خدا میره که نبر اونا سر شکستن که برا شیطان می جنگن تو روبه خدا میری سرتو بلند کن گفت خدا توبه منو قبول گفت خدا توبه وزیره و اولین کسی که راه و بسته من بودم میخوام اولین شهیدم من باشم اگه اجازه بدی من از همین جا تبار عصبم میشم میرم حضرت فهمیدن تو مهمان مایی گفتو <سید Town> <تصفيق> <تصفيق> و بیا تو خیمه آب ندارم یه خورده بشین استراحت میکنی <تصفيق> یه خورده نفست چاق میشه حالا وقت رفتن زمی آقا وقتی دید خیلی اصرار میکنه گفت من از زن و بچه شما خجالت میکنم خب منو با زن و بچهت روبرونت یه جمله میخوام روزه بکنم رفت خیلی هم مردونه جنگید. اما یه جا امام حسین رو صدا زد هر کی زمین میافتاد حسین این وقتی خورد زمین روش نشده امام دل شکسته بود خوش فعال اونهایی که دل هر کی میافتاد. ابا عبدالعبدون می اومدن بعضی رو سرشونو به دامن اما این وقتی خورد زمین حدیث نفس می کرد می گفت دیگه توقع نداشته باشی پسر فاطمه بالا سر تو تو بد کردی بیراه رفتی همین که اجازه داد بری بسته با خودش حدید یه وقتی سرش تو دامن امام مسایی اتباقا ماله هر رو چربشم بشم کرد با هیچ که این کاره نکه یه دستمال در آور پیشونیشو بست بعد چون قبلا یه چیزی به مادرش گفته بود حالا میخواد دلجویی کنه و چه مادر خوبی داشتی چه اسم خوبی تو هر بی همونطور که مادر تو رو هر نامیده یه جمله میگم از جوانان ها توفه دارم حقش رو ادا کن هرکی خورد زمین حسین اومد سرش رو دارم اما امان از اون لحظه ای که بلند، مرتبه شاید به سطر زیم افتار اگر غلط نکنم عرش بر است این خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش جا. هرچی امام نگاه کرد من از امام زمان معذرت میخوام از شما معذرت میخوام هرچی نگاه کرد یکی بیاد سرشو به دامن بگیره معذرت میخوام یه وقت چشما رو باز کردید شم رو سی نشید و شم رو جالت علا صدرت